سلام، به سومین شما از پادکست علی مراد خوش اومدیم صدای من از شهر زیبای فلورانس می شننی. در این قسمت با صحبت در مورد سرخیزی و بخش متا پادکست در هستم من حدود سه ساله که دوست دارم صبح زود از خواب بیدار ولی هیچ وقت موفق نشده بودم یا اگر موفق شده بودم یه روز یا نهایت دو روز تونسته بودم تو این 3 سال البته خیلی تلاش‌های مختلفی کردم خیلی راه‌های مختلف امتحان کردم تا الان الان تقریباً یه هفته است که هر روز سر ساعت 7:45 دقیقه از خواب بیدار میشه. شبش چه ساعتی خوابیده باشم مهم نیست روزش کاری داشته باشم یا نه مهم نیست حتی خیلی جالب بود شنبه این هفته که تعطیل بود خسته بودم میخواستم به ولی برای دیگه سر 745 دقیقه بیدار شده بودم هیچ جوری خوابم نمید توی این سه سال خیلی کارهای مختلفی کردم خیلی راه های مختلفی امتحان کردم ولی همش قاعدتاً به شکست برخوند تا 6 ماه پیش 6 ماه پیش اومدم یه راه حل کاملاً جدیدی رو امتحان کردم قبلاً عمدتاً اینجور بود که یه شب یا یه روز بین نچم نشستم که وای چقدر بده که من صبح دیر از خواب بیدار میشم دیگه من باید یه کاری بکنم حتما صبح زود از خواب بیدار شم مثلا کی بیدار شده بودم ساعت 11 میمونم چیکار می کردم؟ یه ساعت تنظیم کردم ساعت 6 یه کاغزم میچسبوندم به دیوار که بله من صبح زود باید بیدار شم این کار این کار این کار رو مثلا این کارو انجام بدم میخواستم امروزی که ساعت 11 از خواب بیدار شدم از فردا صبح به مدت یه هفته یک ماه یا حتی تا آخر ساعت 6شبیدارم و شروع کنم کار روزان رو انجام بودم. البته این قضیه با این روش تصمیم گیری فقط مال صبح از خواب بیدار شدن نبود مثلا یه موقعی که احساس می کردم که وای من چقدر کم ورزش می بعد شروع کنم به ورزش کردن یه برنامه میریختم که مثلا هفته ای سه روز ورزش بکنم یا هر روز صبح برم بودم یا هر شب بودم یه برنامه اینجوری. یا بعضی رها در زمین تغضیه مثلا می دیدم که یه چیزایی کمه سری می گفتم خب. هر روز باید یه دیوان شیه بخورم یا روزی دو تا میوه به برنامه غض اضافه کنم. خلاصه این قضیه خوابم اینطوری بود که هی میخواستم انجام بدم هی نمیشد هی برنامه میریختم هی نمیشد یا بعضی وقتا میشد پایدار نبود یا بعضی وقتا بیدار میشدم شدم خب آخه با این وضع که من هیچ کاری اصلا نمیتونم بکنم میذا بگیریم بخوابیم و بعد از از دست نره. تا رسیدم به 6 ماه پیش 6 ماه پیش؟ واقعا بعضی بازم, بازم طبق معمول به این دل که وای من بعد سه‌شنبه دست خوابیدار شم من دیر بیدار میشم عمرم داره هدر میره باید یه کار جدی کرد از این حرف دی. یعنی یه جورایی جوگیر میشدم ولی این دفعه اومدم یه راه حل دیگه انتخاب کردم اومدم گفتم به جای جوگیر شدن و یه شبه تسلیمای بزرگ گرفتن بهتره به خودم وقت بدم و بگم که طی 6 ماه آینده میخوام این مشکل رو حل بکنم خب من میخوام خوام در مورد این حرف بزنم که چجوری تونستم توی این شیش ماه با مشکل به این بزرگی کنار بیام و این مشکل رو حل بکنم. اول این کاری که کردم، چیزیه که تقریبا فکر کنم تعالی فهمیدین. به جای ماکرو اکشن، میکرو اکشن استفاده کردم. ماکرو اکشن چیه؟ ماکرو اکشن یعنی یه کار بزرگ. یعنی منی که هر روز ساعت 11 صبح از خواب بیدار می‌شدم، بگم که از فردا میخوام چیش صبح یا منی که مثلا روز یه پاکت سیگار می‌کشیدم، بگم من از فردار هیچی میخوام سیگار نکشم یا منی که از دم خونه تا سر کوچه رو با ماشین میرفتم میگم که میخوام روزی نیم ساعت حتما برم بودم اینو میشه میکرو اکشن ولی من اومدم توی همین زمینه خواب از میکرو اکشن استفاده کردم چجوری؟ مثلا یه بار با خودم قرار گذاشتم که اگه حتی ساعت هی کم از خواب بیدار شدم تا شب خودم اصلا سرزانش نکنم. سعی کنم از بقیه روزم استفاده بکنم. چون خیلی وقتا تا آخر شب همیشه یه احساس گناهی با من بود یه احساسی که خب دیگه امروز خراب شد. امروز دیگه روز بشونیست. کلا به نظر من میکرو اکشن درمان جوگیریه من خودم دیگه هر موقع احساس کنم که توی زمینه جوگیر شدم به جنگ اینکه یه برنامه گنده براش بریزم یه میکرو اکشن براش طراحی میکنم. مثلا همین چرموسیش من دیدم که خیلی زیاد دارم میرم تو اینستاگرام و واقعا یه بخش بزرگ از فکرم درگیر اینستاگرام شد. خب یه راه حلی که قبلا به ذهنم می‌رسید این بود که اینستاگراممو دی‌اکتیو بکنم، فیسبوکمو دی‌اکتیو بکنم بعد یک کارای اینجوری دیگه که کلان از های مجازی بیام بیرون. ولی به جاش این میکرو اکشن رو انتخاب کردم که هر موقعی که کارم با اینستاگرام تموم شد، لاگ بکنم. که دفعه بعد که میخوام برم تو به جای یک کلیک سه تا کلیک نیاز داشته باشه تا بتونم برم داخل اینستاگرام یا سر تقضی قبلا من چندین بار شده بود تصمیم گرفته بودم روزی یه میوه بخورم یا بعضی وقت روزی دوتا میوه بخورم یا آخرین بار دیگه تصمیم گرفته بودم روزی پنج تا میوه بخورم ولی چند روز پیش که یه پوستر توی دانشگاه در مورد سلامتی و رابطش با میوه و تغذیه و از این حرفا دیدم دیگه تصمیم نگرفتم فعلن فقط یه دونه تصمیم گرفتم اونم اینه که هر موقع میرم دانشگاه یه سری ماست میوه‌ای ما داریم دانشگاه که یا اونا رو میتونیم بگیریم یا میوه تصمیم گرفتم که فعلا به جای اون ماستای میوه‌ای خود میوه رو بگیرم همین فعلا دیگه هیچ برنامه بزرگتر از اینی در مورد سلامتی و تغذیه ندارم خب در مورد جذب و میکرو اکشن حرف زدم یه مستقی کوتاه با دیگه گوش بدیم تا در مورد صحبت کنم که چرا به نظر من هل روحی و عمل به میکرو اکشن ها کار منطقی کرد The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it, and heaven knows I would Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. distance makes everything seem small and the fears at once controlled خب، بر نظر بگیرین که دیگه آش مثلا داریم نخود و لوبیا و سبزی و رشته و اینا توشه. حالا من به این نیت که حجم این آش رو ده برابر بکنم ده کیلو رشته میام میرزم تو این آش خب اشتباه من کجا بوده؟ اشتباه اینجا بوده که فکر میکردم آش رشته فقط رشته است اون کسی هم که تو زندگیش 10 دقیقه پیش سرام درس نخونده. تصمیم میگیره از فردا صبح روزی 3 درس بخونه. فکر اشتباهش اینه که فکر کرده روزی 3 درس خوندن فقط به که یه ایده تو ذهن آدم باشه، به این عنوان که من میخوام روزی 3 درس بخونم. نه، آشتشته فقط رشته نیست. واقعا اگه اینجوری بود که یه عمل فقط به اون چیزی که تو ذهن ما بود بستگی داشت، تو خیلی کار ساده میشد. آدم هر کاری دوست داشت می‌کنه. یا اون کسی که روزی یه پاکت سیگار میکشیده میگم از فردا دیگه سیگار نمیکشم اشتباهش همینه فکر میکنه که تنها عامل سیگار کشیدنش این بوده که میگفته من می خوام روزی یه پاکت سیگار بکشم خب حالا میگم من نمی روزی یه پاکت سیگار بکشم پس نمیکشم نه این سیگار کشیدن خیلی خیلی خیلی عوامل شناخته شده و ناشناخته پیچیده ایده خب حالا من وقتی میگم که تصمیم میگیرم که دیگه نمیخوام سیگار بکشم یه دونه از این رو تغییر دادم خب پس ولی بقیه عوامل چی برای همین منطقی تره که بیام یه قدم کوچیک بردارم یعنی یه دونه نخ سیگار کم بکنم حالا چه اتفاقی میفته حالا متناسب با اون یه نخی کم کردم اون عوامل شناخته شده و ناشناخته با تلاش من یا خود به خود متناسب میشن با اون یه نخ کمتر و بعد وقتی یه قدم دیگه کم کنم اونم با باهاش متناسب میشن یعنی اگه یه دیگی دارم که میخوام آششو در برابر کنم نه بعد در برابر رشته بریزم توش بعد یه مش رشته بریزم توش بعد حالا خود به خود نو هم میبینیم کم زیاد میشه لوبیاش هم زیاد میشه همه اینا باهاش متناسب میشه میشه یه آش کامل حالا قدم بعدی دوباره یه ذره رشته میریزم توش این رشته اون تصمیمیه که ما میگیریم یعنی بعد قدم به قدم تصمیم بگیرم برم جلو تا جواب بده چرا؟ چون که اون عملی که اتفاق میفته خیلی پیچیده تر از این که فقط با یه تصمیمی که بله من از برده میخوام فلان کارو بکنم اون عمل تغییر بکنم خب حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم چرا من این دفعه تصمیم گرفتم مسئله خوابم رو با میکرو اکشن حل بکنم البته نه فقط خوابم دیگه تقریبا تا تغییری بخواد تو زندگی انجام بدم با میکرو اکشن انجام می‌ده. یه مثال خوب دیگه برای فهمیدن میکرو اکشن یه مثال ورزشی. فرض کن یه نفر میتونه یه وزنه 5 کیلویی رو الان بلند بکنه. خب، می اگه بره الان از فردا تصمیم بگیره که خب من می‌خوام یه ورزشکار قوی باشم، پس فردا میرم یه وزنه 50 کیلویی برمی‌دارم. خب قطعا موفق نمیشه. بعد پیاد یه وزنه 5.5 کیلویی بردارد. یه مدت سعی کنه 5.5 کیلویی رو بر داره. و 55 کیلوئی به همون عادی بودن 5 کیلوئی بشه براش یعنی عاملای دیگه زدن وزنم دلش تقویت بشه بعد برسه راقش 6 کیلو تا برسه 5. منم حالا این دفعه برای خوابم همین کار کردم. حالا میخوام در مورد این میکرو اکشنایی که دون دون انجام دادن اون قدمهایی که تک تک برداشتم صحبت کنم. روش کار من بود که هر بار ساعت بیدار شدنم شدنمو 10 دقیقه میوردم عقب‌تر. خب وقتی 10 دقیقه میوردم قبل، یه فشاری به من می اومد مثلا همون کسی که 5 نیم کیلو میذاره روی وزنی که داره میزنه. بعد وقتی که داشتم این فشار رو تحمل میکردم در عینش شروع میکردم هی به عوامل دیگه فکر کردم و سعی میکردم اون نخودلوبیا بیارم به آشام اضافه بکنم. یعنی بهش فکر بکنم که خب حالا اون 5 دقیقه‌ای که گذاشتیم مثل ذره رشته که ریختیم توش. حالا ببینم دیگه بعد همراه با این چه کارهایی بکنم تا به اون هدفی که میخوام برسم تا آش بیشتری داشته باشه. یکی از اولین چیزهایی که دیدم این بود که من شبا انگار دوست ندارم بخوابم. خوابم میاد ولی از خوابیدم فرار میکنم خیلی نوع با خودم کل رفتم فکر کردم یکیم تو اینترنت در مورد سرچ کردم این نجهستم که وقتی که از اون روزم راضی نبودم وقتی این حس ندارم که خوب امروز به یه اندازه مفیدی کار انجام دادم دوست ندارم امرو تموم کنم. انگار هنوز از اون روز سیر نشدم انگار. هنوز تشنم نسبت به اون روز هنوز میخوام اون رو زندگی بکنم انگار به اندازه کافی اون روز رو زندگی نکردم بعد اومدم نشستم فکر کردم خب چرا من همچی فکر میکنم آیا واقعا به اندازه کافی تو اون روز زندگی نکردم بعد بین نچه رسیدم که خب انگار من یکم واسباس دارم یعنی یه کاری رو اگه انجام بدم خیلی به دلم نمیشینه که خب این بسته مثلا اگه سه 300 ویورون تمرین بکنم. انگار هنوز یه چیزی کمه. انگار دوست داشتم پنج ساعت تمرین بکنم. یا اگه مثلا 100 صفحه کتاب بخونم، هی از خودم انتظار داشتم که نعمد تو این روز باید دیوی صفحه کتاب بخوندم. یعنی یه انتظارای نابجایی داشتم از خودم. چه توی کمیت کارام چه توی کیفیت کارام؟ کیفیت کارام مثلا اینکه که خوب حالا من این ویولون تمرین کردم ولی قطعات که خوبه خوب نمیزنم که هم حالاسته اینکه توی ششمه رو مسئله کمالگرایی و علتاش هم خیلی کار کردم. یه نکته دیگه که بعدا متوجه نمی بود که دیدم من صباح انگار برای از خواب داشتن خیلی انگیزه ای ندارم یعنی اگه ساعت چه صبح چشمه رو باز کنم میبینم خب حالا پاشیم که چی کار بکنیم تخت به این خوبی، دوست به این خوبی به نام بالش، رفیق عزیزی به نام پتو من این آخر ول کنم پاشم مثلا چی کار بکنم تو این دنیا؟ برای حل کردن اینم یه چیز ساختم به نام باکت لیست. باکت لیست هستلا انگلیسیه که هر که... یعنی کارهایی که دوست دارین توی زندگی انجام بدین. حالا من نه که از کلمه باکتش استفاده کردم و واقعا یه سطل برداشتم کارهایی که دوست دارم توی طول زندگی انجام بدم و ریختم توش. صبح که دیگه بیدار میشم یا شب قبل خواب دیگه این همیشه تو ذهنمه که ا دیگا کن این کاغذا رو تو میخوای انجام بدی. یبار همین صبح که دیگه تو حالت نیمه خواب و بیداری هستم دیگه این بغونه ها نمیاد سراغم که خب حالا مگه میخواد چی بکنیم میگم اینه این کاری که تو تاخ چس میخوام انجام بدم خب حالا دیگه با جزئیات ماجرای این بیدار شدن صبحگاهی رو درد نمیارم در جواب اونایی که من میگن چه خبر اینو میگم که توی این مدت من فهمیدم که اگه یه کار جدیدی میخوام شروع کنم یا یه چیزیو میخوام تو خودم تغییر بدم اون روش جذب دیگه فایده‌ای نداره. بعد یه بازه زمانی طولانی براش تعریف بکنم، یه سری میکرو اکشن، یه سری قدم های کوچولو کوچولو براش انتخاب بکنم و از همه مهمتر نشینم به علت های قضیه فکر بکنم که چرا این الان این جوریه؟ چه چیزی موجب شده که اینجوری بشه؟ و اون موجباتشو تغییر بدم و موجباتشو فراهم بکنم. افتران نکه پادکست برای اینه که از تجربه ساختن خود این پادکست ترک بزنم یکی از مشکلاتی که من همیشه تو زندگی دارم جواب دادن به سوال چه خبره فردام من قراره برم کلاس ویولون و استادم بعد از سلام احوال پورس من میگه چه خبر واقعا همیشه برام مشکل بوده به این سوال جواب بزن به خصوص وقتهایی که بیشتر توی خونه بودن و بیشتر خبرها خبرای درونی بودن تا خبرای بیرونی مثلا به جای اینکه یه امتحان بدم یا یه سفر برم یه کتاب خوندم یا نشستم به یه موضوعی فکر کردم البته سوال چه خبر در حالت عادی واقعا سوال پیچیده نیست و کافیه بهش بگیم سلامتی چه خبر؟ سلامتی چه خبر؟ دعاقوی شما هستی یا یه چیزای اینجوری منی من یه اخلاقی که دارم اینه که سوالا را خیلی جدی میگیرم مثلا حتی شده که من بگیم که سلام خوبی؟ بگم سلام نه جواب دادن هم به سوال دیگه چه خبرم هم یه همچین حالتی داره و خیلی جدی میگرمش و واقعا میخوام اخبار رو تعریف بکنم خب از یه وقت با این م... تمایل رو, رو هم که میخوام واقعا بگم چه خبره از اون ور اخبار خیلی اخبار ملموسی نیستن و یه داستانه عجیب غریبی از رختا میشن و از طرفی هم اگه اصلا داستانه عجیب غریبی هم نباشن و یه ماجرای خیلی ساده هم باشن اصلا جاش جای تعریف کردنشون در جواب سوال دیگه چه خبر نیست. یکی از کاربردهای جدیدی که برای این پادکست پیدا کردم اینه که میتونم جواب سوال چه خبر رو بیام اینجا جواب بدم. خبر مهم زندگی من این هفته واقعا این بود که بالاخره بعد از ماه تلاش مداوم موفق شدم صبح زود از خواب بیدار شدم. البته اگه اون دو سال و نیم تلاش ناموفق قبلش حساب نکنیم یه از چیزایی که در مورد این پادکست من توی افته خیلی فکر میکردم این بود که آیا این حرفایی که من میزنم برای بقیه جالبه یا اصلا باید این حرفا رو بزنم، نزنم؟ یه سؤالای اینجوری تا اینکه کتاب وقتی که از دو حرف می‌زنیم از چه چیز حرف میزنیم و شروع کردم بخوندن دیدم که تو این کتاب اومده تک تک احساساتش و تک تک, تک تفکراتش رو دقیق با جزئیات، با قبلش با بعدش همه رو دونه دونه توصیف کرده و اصلا تمام زیبایی این کتاب تمام جذابیتش بینه و خوندن این کتاب من رو خیلی امیدوار کرد. فقط یه تفاوت مهمی که اون کتاب داره اینه که اون توی زندگیش هی رفته بود یه سری کارای جالبی انجام داده بود و تجربیات حاصله از اونا رو میومد تعریف می کرد. من فکر کنم که برای اینکه پادکست خیلی پادکست بهتری بشه برای خودم و برای اونایی که میشنند، اینکه که منم باید یه سری کارهای جالبتری انجام بدم که اون تجربه ها و اون احساساتی که در موردش حرف میزنم هم جالبتر می خب من از شما شنونده عزیزم درخواست می کنم که تجربیاتتون در مورد از خواب بیدار شدن در مورد تغییر جفترن تیه زندگی در مورد ریشه‌ای مشکلات و هر چیزی که به نظرتون به حرف های زده شده توی این پادکست رفت داره رو برای من بفرستین تا در شماره بعدی بخونم برای این کار یا نوشتن هر گونه انتقاد و پیشنهادی میتونین از آیدی تلگرامی که توی بخش توضیحات کانال تلگرام نوشته شده استفاده بکنیم در آخر میخوام که این شماره از پاکست رو تقدیم بکنم به خاله های عزیزم ممنون خاله های خوبم امیدوارم که هر جا هستیم شاد باشین. ممنون از شما که این شماره از پادکست رو گوش گردید تا شماره بعدی خدا حافظ.